بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علیه سیدنا محمد و آل تاهرین و عرض سلام و احترام خدمت شما سروران گرامی امیدوارم که ساعات خوبی رو در کنار خانواده محترمتون سپری کنید و همگی در صحت و سلامت باشید مطالب تفسیر رو اگر خاطر مبارکتون باشه پیرامون اشغالات معاد جسمانی پیش بردیم و قرار شد توی این جلسه پیرامون معاد روحانی در سنجش خرد و از دیدگاه حکیمان بحث کنیم که اینجا مطالب آیتلا صبحانی ناظر به دیدگاه حکمای ما هست که بیشترم توی حکمت متعالیه ما میبینیم در واقع افرادی که قائل یا به نوع شاره دیدگاه منلاصد را هستند شما میتونید اینجا دیدگاه را مشاهده بفرمایید. مطالب ما اینجا از صفحه 180 شروع می شود. ایشون به صورت مقدمه یک اشاره میکند می کند به این صورت که اگر ما بریم دیدگاه قرآن و سنت را مشاهده کنیم می بینیم که در قرآن کریم، در واقع معاد روحانی مورد پذیرش هست منطقه مآد روحانی که در واقع همراه با مآد چی باشد جسمانی باشد که این هم بحثش مطرح شد حالا از نظر عقل پیرامون معاد روحانی ما میبینیم که مطلبی مطرح میشود که این دیدگاه میبینیم این مقدار متفاوت هست یعنی حکمای ما یک دیدگاهی را دارند که این دیدگاه خیلی خاص هست شبیه دیدگاه قرآن کریم نیست حکم ما آن چیزی را که مطرح میکنن قائنن که در واقع همه معاد روحانی ندارند. یه خاصی معاد روحانی دارند. که این معاله میخواییم بگیم این خلاف آیات قرآن کریم و روایات ما هست این گونه نیست که ما بگیم معاد روحانی همگانی نیست چرا چون که همه به تکامل روح نرسیدن به همین خاطر اینها نمیتونن درکی از نعمتها و عذابها داشته باشن به هر حال و چون خیلی از افراد طبق دیدگاهی که حکما میگن خیلی از افرادشون در تکامل جسمشون هستن و توجهی به تکامل روحشون ندارن پس معاد روحانی به هم معنی در واقع والایی که ما میگیم نخواهند داشت حالا ما مقدمتا این مطلب رو اینجا توجه داشته باشید که وارد بحث بشیم ببینید ما اگر بخوایم حکم عقل را پیرامون معاد جویا بشیم با دو تا در واقع دیدگاه ما مواجهیم یکی امکان و امتناع دیگری دل... دلیل بر تحقق در واقع معاد است به لحاظ عقلی در واقع ما هیچ امتناعی نداریم هیچ در واقع امر محالی نیست معادی کمر ممکنه یعنی اصلا شما کاری به در واقع آیات و روایت و نصوص دینی هم نداشته باشید شما میبیند که عقل میپذیرد که در واقع انسان این ظرف عالم ظرف تنگیستیه در واقع همه ما به اون تکامل خودمون نمیرسیم همه ما به اون در واقع سواب و اقاب خودمون در حیات دنیاوی نمیرسیم مثلا من فقط یک نمونش رو گذره بگم دیگه وارد بحث بشم مثلا شما در مورد ناقصال خلقه ها میخواید چی بگید شما در مورد اشخاص ناقصال خلقه چی میگید اونا که برنگان خدا مقصر نبودن در این حیات دنیوی اومدن این همه زجر و گرفتاری میکشن خب اگر در واقع معادی نباشه که در, واقع در حق اینا ظلم میشود یا موارد دیگه که ما داریم حالا ببینید اون تو جایگاه خودش با بره بس بشه میخوام بگم مواردی که ما داریم آدم هایی که کلی خطا میکنن افراد زیادی رو میکشن نهایتا تمرینه که ما یک بار اون آدمو بکشیم به یک بار جانشو گرفتیم گرفتیم دیگه پس بعد یک معادی باشد بر اساس این نکته پس ما میپذیریم که به تعبیر ایشون هیچ گونه عذر عقلی در تحقق پاداشا و کیفرهای غیر حسی که نفس در دریافت آنها نیاز به بدن و قواهی حسیان ندارد وجود ندارد پس هیچ وزره نیست بیمونه دلیل تحقق اون چیزی که ما داریم یعنی حالا بحث دلیل تحقق معاد روحانی اینجا مطرح می شود خب اینجا ما بس جدی هستی که در مورد امکان ما میپذیریم می محال نیست این امر ممکنه در واقع روح باید بیاتش کار کنه در واقع این سبب ها و عقاب ها را درک کنه حالا ما میریم در مورد بحث تحقق و اینه که به صورت محقق شدن اون میخوایم بحث کنیم ببینید ما یه سری اصول داریم بحث حکمت و رحمت الهی از حکمت و رحمت حق تعالی ما قطعی بودن معاد را میتونیم اثبات کنیم نکته ای که اینجا شما باید توجه کنید بحث تحقیق معاد روحانی این است که انسان در سرای اخروی وقتی محشور میشن دو دسته هستند. یه ده گروه هستن که از نظر تکامل تنها به حدی رسیدن که از لذت در واقع حسی و در واقع درد حسی رو درک میکنن و بی‌تأنی از نظر این دیدگاهی که در واقع مطرح می‌کنن اینه که این افراد ثواب و رو در همین چارچوب لذت‌ها و دردها در واقع میشه برایشون خلاصه کرد برا... ب... چرا چون که اینا سعادت و شقاوت دنیاوی رو همین شکلی میدیدن، همه چیز رو به جسم و تن می‌دیدند بنابراین اد... برای این افراد ادراک حسی در واقع ملاک قرار می‌گیره نقطه مقابل افرادی هستند که از لحاظ معرفت و کمال کمال تو در واقع ساحات عقل نظری و عملی به یک مرحله ای رسیدند که در واقع به جسم در جسم در واقع قوتور نیستن و از جسمشون عبور کردند پس رحمت واسعه حق ایجاب میکنه که این گروه در واقع به پاداش های نائل بشن که در واقع در محدوده لذت های جسمانی نیست این افراد در واقع به دلیل اون که از نظر عقل و عمل در مرحله والایی هستند پس اینها باید یک حیات معنوی کاملی را در واقع تجربه کنند چون اینها به حیات معنوی رسیدن دیگه اینها باید به ادراک در واقع روحی برسن ادراک نفس برسن که این وسط انسان کامل ویژگیش این هست و اینه که ما داریم که او کمای ما میگن مراتب بهشت را به مراتب عقل انسان ها میدن یعنی این که انسان به منظورمونم هم عقل محاسب گرد یعنی اون عقلی که عقل نظری و عملی هست خب طبیعتا این ها در واقع پذیرایی چون اینا در وجود خودشون این قوه نظری و عملی را در واقع متبلور ساختند میبینیم که اینها به تقرب حق تعالی، به لقا حق تعالی نایل می شوند و به شهود قلبی و نفسی دست پیدا می کنند. برای همینه که در, روا، در حکمهای ما اشاره کردند که المعرفت و بذر المشاهده در واقع معرفت انگار بذری برای مشاهده و لقا هست. هرچی ما معرفت ما بالاتر برود به مرحله شهود می تونیم برسیم و معرفت شهودی می رسیم. پس از نظر حکمای ما ببینید حکمهای ما نظرشون اینه که اکتفا کردن به معاد جسمانی از لحاظ سعادت ها در واقع یه ستم در حق نفوس کامله اینه که ما بیایم خودمون را فقط در حور و قلمان و چه دونم اصل مصفا و نهر و اینها در واقع محدود کنیم حکمای ما میگن نگار ما هنوز از جسم گرفتاریم بله طبیعتا اونجا لذت جسمانی هست اما آن چیزی که در واقع انسان های کامل در سرای اخروی به اون میرسن در واقع اون حز و بهره در واقع شهودی هست تقرب و لقا هست حالا ببینید با توجه به این نکته حکمای ما این نکاتی که دارن از نظر اونها معاد روحانی در واقع همگانی نیست یعنی مواد روحانه اختصاص به یه گروه خاصی داره به اولیاء الله، به انسان‌های کامل و سایر افرادی که توانستند خودشون رو در قوه عقل عملی و نظری تکامل بدن پس این دیدگاهی که اینها مطرح میکنند اما شما وقتی میرید نگاه می‌کنید قرآن کریم اگر یادتون باشه ما تو جلسات بود که اشاره کردیم اگر خواستید برید آیاتش رو هم مشاهده کنید شما وقتی میرید سراغ آیات میبینیم که معاد روحانی قرآن در واقع یک امری عمومی است که شما از صفحه 118 ها مشاهده میکنید بس رزوان جدا از بس های جسمانی در مورد رزوان الهی در مورد دوری از رحمت حق تعالی درباره اندوه و حسرت جانکاه آیاتی که ما قبلا خونیم لقاه محبوب شما برید این آیات و روایات رو مشاهده کنید رنج و فراغ محبوب که در آیات و روایات این موارد اومده اینجا نیومده بگه که اینها فقط مختصی سری افراد خاصه عمومی منطقه ببینید ما یه چیز رو فقط میگیم حالا اینجا تو کتاب نیومده تو جزوه نیست معاد روحانی بله یک امر متدرج هست مشکک هست یعنی بر اساس مراتب وجودی ما هست طبیعتا معاد روحانی امثال بنده و معاد روحانی رسول اکرم و فرق کنن شما وقتی میبینید در واقع اون شخصی که قطب عالم امکان هست با اشخاص عادی که خطا کنن و مرتکب خطا شدن و در واقع حالا توی اگر پاک بعد از پاک شدن تو مراتب پایین در واقع به هشت قرار میگیرن طبیعتا درک اونها درک روحی اونها درک نفسانی اونها هم هست خیلی پایین باید باشه. ما اینو میگیم. میگیم ماده روحانی هست منتا مرتبه منده. اما اینگونه نیست که بگیم ماده روحانی الا لا بود فقط برای یه گروه خاص هست. این مقایر باید فرابایده. حالا ما دیدگاهی که حکم ها مطرح کردن را اینجا به صورت فشرده آیت الله سبحانی بیان میکنه که قالب اونها را از آثار جناب را ببیجه از اسفار و حالا شارهان اسفار و مروژان حکمت متعالیه نقل میکنن و این یه سری مقدمات رو ما باید اینجا دقت کنیم اینا مهم لذت نزد حکما در واقع عبارت هست از ادراک چیزی که با قوای درک کننده هماهنگی داره اینا حرف حرف درستیه یعنی آقا لذت شیرینی در واقع برای چیه؟ برای قوه زائقه هست دیگه درسته؟ حالا ما ببینید خدمت شما هر چه باید که هرچی قوه ادراکی ما بالاتر بره هرچی فهم ما بالاتر بره اون لذاعز هم با چی باشه متفاوت تر باشه مثلا شما وقتی یک انسانی که به درجه از حکمت میرسه یک بحث عقلی و حکیمانه وقتی براش کشف میشه یک لذت خاصی داره. حالا شما اینو برید بری برای یه آدم عمی و بیسواد. برای آدمی که اصلا توی این وادی ها نیست. اصلا برای این عذابه، نعمت در واقع لذت نیست. شما وقتی میرین نگاه میکنین بعضی از افراد علومی را در واقع دارن که خیلی از اشخاص اگر شما پنگ نگین این صحبت شما رو بشنبن اصلا لذت نمیبرن برای امینه که صحبتی از اللامحسنزاد داریم که ایشون میگن خدا را سپاس که زاقه من با هیچ کدوم از علوم بیگانه نیست یعنی شما گاهی اوقات میبیند افراد تا یه حدی یه سری از علوم را پذیره هستن خب این با توجه به این نکته ادراک در واقع با قوای ادراک کننده ملائمت و هماهنگی داره طبق نظر حکما و این حرف هم حرف درستیه بر این اساس ماهیت لذت از مقوله ادراک و واقعیت اونم به دو تا چیز بستگی داره یکی ادراک شونده و دیگری قوای ادراک کننده خب وقتی ما رفتیم توی سرای اخروی وقتی ما تو دنیا در واقع تونسته بودیم خودمون رو تکامل ببخشیم و اینها طبیعتاً اینها با ما هست دیگه بسید تجسم اعمال پیش می آید قوه وجودی ما در واقع با توجه به این ترقی عقل نظری و عملی در واقع اونجا ما می توانیم اون قواه ادراک ما توی مرحله والای قرار می گیرد این لذت متفاوت می شود درسته؟ برای همینه که انسان به تعبیر سعدی حرف جالبی داره میگه لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت ها لذت نخانی اگر انسان لذت تقوا را چشید اصلا بقیه لذت ها معنی میشه برای یده گناه کردن لذت برای اون شخص گناه نکردن و تقوی لذت میشه این مراتب پس متفاوت است دومین مورد اینه که برتری لذتهای اقلانی و لذتهای جس، جسمانی و حسی این سخنی که حکمای ما میگن لذت‌های اقلانی خیلی برتره اینجا بحث برتری ادراک کنن و ادراک شونند لحاظ میشود گای ادراک ما حسیه گای اوقات اقلانیه ببینید حکما میگن میگن که از اونجا که هستی هستی مجرد بر هستی مادی برتری داره بر این اساس ادراکات اقلانی نیز بر ادراکات حسی برتری خواهند داشت و از آنجا که کاملترین هستی ها واجب الوجود هست حق تالا هست کاملترین سعادت و لذت نیز در که ادراک وجود حق تعالی هست پس اگر ما بتوانیم به مرحله درک برسیم این بهجت و سروری که برای ما حاصل میشه این اصلا قابل مقایسه با هیچ لذتی نیست قابل مقایسه با هیچ لذتی نیست اینه که حالا من نمیخوام حاشیه برم اینه که پیامبر موقع نماز میشد به بلال میگفت که عرح یا بلال در واقع ما رو راحت کن ببینید این مثلا برای ما غایقات میخونیم فقط در حد رفت تکلیف نماز ما و نماز پیغمبر ببینید ما هرچی این ادراکات ما در واقع دقت کنیم ادراک اقلانی ما در واقع ما این رو بتونیم بس برتریشون ببخشیم در واقع ارتقاش بدیم از نظر حکمه اونجا هست که در واقع تز و بهره خاصی از این نعمت ها خواهیم برد که بالاترین نعمتون لقاه حق تالا هست طبیعتا افرادی که توی لذت ها و قوای شهوانی در واقع دست و پنجه نرم می اینها هم در واقع بهره از لذتهای اقلانی نخواهند داشت سومین مورد که حکما میگن از نظر اونها لذتهای اقلانی به طور کامل تو دنیا ادراک نمیشه، چون ظرف دنیاوی تنگه محدوده صحبتی که میکنن اینه که علت عدم دستیابی به درک واقعی و کامل لذت های عقلانی تو دنیا اینه که در هر صورت شما هر کاری کنید نفستون به بدن مادیتون متعلق است. تعلق دارد حال همین طبق صحبت که نمیگین همین ما یه جوره گرفتار این بدن مادی هستیم جنبه هایی که هست بر این مبنا ادراک تمام ایار تمام ایار لذت‌های اقلانی در واقع در جهان محقق نمیشه چون هنوز در واقع نفس خدمت شما هر چود به بدن تعلق داره به همین خاطر شما مشاهده میکنه یه ده دیگه, دیگه اینقدر این تعلقشون به بدن را اینقدر تشدید میکنن تشدید میکنن که در واقع اینها گوهر ذات خودشون را فراموش میکنن که در آیه 19 همه سوریه اومده دیگه نسالله فنسا هم انفوس هم خدا رو فراموش میکنن یه بنابراین خدا اونها رو به خودشون می فراموشاند انگار گوهر ذات وجود خودشون رو دیگه فراموش میکنن حالا این وسط از نظر حکما اون چی که میتونه مایه میتونه در واقع یه جورای مانعه انسان از پیوستن به حقایق کلی و موجودات اقلانی میشه دو تا امره یکی جهل و دیگری علاقه به بدن خب طبیعتاً افراد کامل افراد انسان های وارسته انسان هایی که به مرتبه کمال رسیدن نسبت به حقایقی که معرفت کلی و اقلانی دارن این پس منتفی میشه بس توجه و علاقه, ب... علاقه به بدن هم این دیگه به, به واسط مرگ از میان میره یعنی دیگه ما اونجا دیگه این بدن عنصری از نظر حکما نیست دیگه اگر یادتون باشه مولا صدراب است بدن مثالی رو مطرم کرد دیگه این گرفتاری نیست ما به این جسم متراکیم و کسیفمون در واقع چیه تعلق خاطر نداریم خب الان یه اشکالی بر دیدگاه می شود وارد کرد اشکالمونه که شما باید دقت کنید تعلق نفس به بدن اگر ما بگیم که تعلق نفس به بدن مانع درک کامل اوالم اقلانی و های اقلانی می شود به حال در سرای اخرابی نیست نفس به بدن تعلق داره دیگه درسته؟ تعلق نفس به بدن همچنان هست دیگه حالا ولو به نوع مثالی این اشکال همچنان پا بر البته اینجا حکم ما میگن چون چونون نوع no, این بدن اگر دیدید که ملا صدران میگو این بدنه دیگه در واقع متناسب با خود سرای اخروی میشه جوری نیست که اون تنگناهای بدن مادی رو داشته باشد آیت الله سبحانه میگه اگر شما میگید که تعلق نفس به بدن مانع ادراک کامل اوالم اقلانیه لذتهای اقلانیه هست این مشکل تو سرای اخروی هم جای خودش هست حالا اینجا پاسخهای رو مطرح میکنن خدمت شما عرض شود که اینه که بدن اخروی هرچند بدن جسمانی و انصریه نه در واقع بدن ب... ب... مثالی برزخی ولی در این حال بدن اخروی در واقع تر و تر از بدن دنیاویه یادتونه که ملاستدرا اشکال گرفته بود ما تو هفته پیش گفتیم دیگه ببینید ما گفتیم ما این بدنه جوری نیست که در واقع شما از اون شپه تناسخ و بقیه موارد رو بگیرید و این بدنه در واقع تکاملی آفته هست اینگونه نیست که ما بازگشت مجدد به دنیا نمیشه این بدن متکامل هست دومین نکته هم که ما باید لحاظ کنیم بحث تعلق نفس به بدن اخروی در واقع به اون بدن ما تو سرای اخروی میگیم تعلق نفس به بدن در واقع تو دنیا اگر یادتون باشه ما گفتیم این تعلق به شکل تدبیر هست یعنی ما دائما این نفس ما این روح ما داره بدنمون را تدبیر میکند بخور بیا شام چندونم نگاه کن نگاه نکن ببینید ما همش همینه دیگه کارمون این هست یه جور داره تدبیر میکنه اما در سرای اخروی در واقع تعلق نفس به بدن به یه شکل دیگه است. تعلق از نوع درک سواب و اقاب هست تدبیره دیگه کم فروغ و کم فروغ می شود نمیخوام بگیم کامل از بین می اما اونجا بس درک سواب و ایغاب است. حالا ببینید این مطلب رو تو صفحه 185 مورد دومیش رو می, می که تعلق نفس به چنین بدن با تعلق آن به بدن دنیاوی تفاوت دارد نفس در این جهان مدبر بدن و مایه حیات اوست و سرانجام انسان با به کار دستگاه گوارش و فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی به زندگی خود ادامه میداد. در حالی که تعلق نفس به بدن در سرای دیگر به نوع دیگر است و هدف از تعلق این است که نفس به ثواب و عقاب جسمانی نائل آید همون درک ثواب و عقابی که بهتون گفتم سومین نکته هم که ایشون اشاره می کند اینه که ممکنه که نفوس بشری بعد از جدایی از این بدن تو عالم دیگه چی بشن قوی تر شود نیرومند تر شود برای همین وقتی بدن آنسوری ما تعلق نفس به بدن آنسوری تو سرای اخروی به این شلتی که امکانات بیشتری برای درک این نفسه امکانات بیشتری برای درک امور عقلانی خواهد داشت یعنی شما ببینید نفوس ما در واقع توی دنیا شما هرچی بگید برحال محدودش فرق داره اما در سرای دیگه ما میتونیم همون بدن عنصری رو لحاظ کنیم منطق قابلیت نفسمون ارتقا پیدا میکنه در حالی که قابلیت نفس در دنیا چیه پایین تره به همین همی خاطر که جناب فاضل مقداد سیوری در کتاب اللوام الهیه اشاره میکنن که نفوس بشری اگرچه مجرد از ماده اند ولی تو دنیا در واقع ضعیف و ناتوان هستند حالا هنگامی که در واقع روح از بدن جدا میشه به هنگام مرگ این در واقع فیض حق تعالی را در واقع نائل میشود اون رو کسب میکنه حالا وقتی که بدن توی سرای دیگه برمیگرده ایشون میگه بعید نیست که بتواند هر دو نوع سعادت حسی و عقلی را به وچه تام و کامل چیه به دست آورد یعنی آقا اونجا اصلا متفاوت میشود اون بدنه طبق چیزی که حالا آیت الله نظرش بود که بدن انصاری دیگه اون بدنه دیگه مثل این بدن نیست که در واقع خدمت شما هر چود که کسالت و خستگی و رخوت و این موارد براش روخ بده اون بدنه در واقع یک اعتدال خاص و یک تکامل خاصی پیدا می کنن آب این مورد هم موردی بود که باید بهش دقیق کنیم